ادین اونیه، درست سه هفته منتظر فرصت مناسبی بودم تا به پدرم بگویم دست ازدواج کیمیا را طالبم. در ذهنم بارها با او صحبت کرده بودم و برای پیدا کردن تأثیر گزارترین عبارتها تمرین کرده بودم. برای هر اعتراض احتمالیش جوابی آماده داشتم اگر می گفت تو و کیمیا مثل خواهر و برادر هستید یادآوری می کردم که کوچکترین پیوند خونی میان ما نیست اگر می گفت درست است اما دیگران چه می گویند؟ می گفتم این طوری برای همه خوب می شود چون میدانم پدرم کیمیا را خیلی دوست دارد. نقشه داشتم بگویم اگر با این ازدواج موافقت کند، کیمیا همیشه در این خانه می ماند و اصلا مجبور نیست به جای دوری برود. همه چیز را توی ذهنم آماده کرده بودم. اما مگر میشد شد یک دقیقه با پدرم تنها بمانم. امشب هم که دیدمش به بدترین شکل ممکن بود. داشتم برای دیدن دوستانم از خانه بیرون می رفتم که یک دفعه درباز شد و پدرم آمد تو. همین که چشمم به کوزه های توی دستش افتاد از حیرت ماتم برد. پرسیدم پدر این هایی که دستت است چیست؟ پدرم در کمال آرامش گفت ها اینها را می در چهره اش کوچکترین نشانه از ناراحتی یا خجالت نبود. گفت اینها شراب است فرزندم. فریاد زدم. چی؟ شراب؟ مولانای بزرگ به چه حالی افتاده؟ پس پیر مردی عیاش شده ای. صدایی پرخاشگرانه وسط حرفم دوید دهنت را ببند علا ادین. اول فکر کن بعد حرف بزن برگشتم شمس بود که این حرفها را زده بود بیام که پلک بزند به صورتم نگاه می کرد حق نداری با پدرت اینطور حرف بزنی. من بودم که از او خواستم به میخانه برود. گفتم خب پس این طور. اصلا تعجب نکردم. به نظر نمی آمد خاطرش رنجیده باشد. بیان که حالتش را تغییر دهد گفت. علا ادین بیا در آرامش صحبت کنی. اما اول باید عصبانیتت فروکش کند تا متوجه حرفهایی که میخواهم بزنم بشوی اگر زره قلبت را نرم نکنی هر حرفی که بزنم به تو برمیخورد. گفتم نرم کردن زره قلب دیگر یعنی چه لابود با تعجب نگاهش کرده بودم که شمس گفت یکی از قاعده هاست قاعده 31 برای نزدیک شدن به حق باید قلبی مثل مخمل داشت هر انسانی به شکلی نرم شدن را فرا میگیرد بعضی ها ای را پشت سر بعضیها بعضی ها مرضی کشنده را بعضی ها درد فراخ میکشند. بعضی ها درد از دست دادن مال همگی بلاهای ناگهانی را پشت سر می گذاریم. بلاهایی که فرصتی فراهم می برای نرم کردن سختی های قلب بعضی هایمان حکمت این بلایا را درک می کنیم و نرم می شویم بعضی اما افسوس که سخت تر از پیش می شوی. گفتم تو در این کار دخالت نکن. مگر قرار است آدم مستی مثل تو به من دستور بدهد. پدرم ممکن است پشت تو بایستد من اما آنقدر دل رحم نیستم. یک دفعه پدرم وسط حرفم پرید. ساکت باش علا ادیند. ادبت کجا رفته؟ لحظه احساس پشیمانی شدیدی کردم اما دیگر دیر شده بود همه دقدلی ها و سرزنش هایی که در این مدت قطره قطره درونم جمع شده بود یک دفعه مجال بیرون ریختن پیدا کرده بود شمس صدایش را پایین آورد و گفت مطمئنم از من دستکم همانقدر که میگویی نفرت داری. اما لحظه تردید نمی کنم در اینکه پدرت را دوست داری. مگر نمیبینی چقدر ازیتش کرده ای. به همان شکل جوابش را دادم. گفتم: «خودت مگر نمیبینی چطور آرزوهای ما را نابود می کنی. کاش بمیری و از شرت خلاص شوید. آن هنگام پدرم به طرف من پرید لبهایش از عصبانیت به خطی ظریف تبدیل شده بود دست راستش را بلند کرد فکر کردم میخواهد سیلی بزند منتظر ماندم اما نزد بی آن که حتی به صورتم نگاه کند گفت مرا شرمنده می کنی. چشمهایم پر عشق شد. سرم را برگرداندم تا نبینند چه حالی دارم. و آن وقت با کیمیا چشم در چشم شدم که در آستانه در اندرونی ایستاده بود. نگو درست پشت سرمان بوده. کی آمده بود؟ از کی تا حالا از آن گوش تماشایمان میکرد جر و بحثمان را از اول تا آخر شنیده بود اینکه پدر خودم جلو دختری که میخواستم با او ازدواج کنم این طور تحقیرم کرده بود چنان برایم سنگین بود که درد شدیدی توی معده‌ام پیچید دیگر نتوانستم آنجا بمانم جبه و چکمه هایم را زود برداشتم شمس را به کناری هل دادم و خودم را از در بیرون انداختم به دور دست رفتم فرسنگ فرسنگ دور از کیمیا دور از تنگنایی که گرفتارش بودم دور از کانون خانواده دور از این دعواهای بیمهنا دور از همه اینها